اللهم انشاء به که و وقتی که ما را به این اجماع نهون استادش ما را سیدم سباً در وقت خوشیت هم اجمال شکل توسی و بعد کیفیت جمع بین این دو اجمال با توزیه هایی که داریم صحبت شد روشن شد که اصولاً توی این مسئله جای رجوع به اجمالی اجمالی زده است. اگر تامو تمام بشه این کاشه پر خوره باشه ما در این مسئله اقوال اصحاب رو براحکیم میبینیم نیازی به اجمال نداریم که بگیر مثلا یک امر تحبودی هست بگیر که بازا حجت هست یا امر تحبودی هست حجت نیست مثلا اول از که به تحبود درسته با شبارد تاریخی و با مواجعه پکی به کلمات ازها و فساوای از ها و روایات ازها مطلب باز نه نیازی به درید تحبودی نداریم اصولا جای رجوع به نه اجموع توسیست و نه اجموع سید محتضا رحمه الله بله آمه این که چطور این دو بزرگاه دایه جماعه کردن اون بحث دیگریست به ادلا جای حقوق با اونهاییست و, و توضیحاتی رو دوی روزه ارض برای توضیح بیشتر مطلب نید از مطلب بکیدو در من این مطلب رو سابرم چند بار از کردم در بحث و خبر ندیدنی این تأمیه رو به خودم نسته چون خیلی مقایده تا نگاهسه باشن نسبت نمیدی ارز کرده کنبا میشه سه قول به طول کلی قرار داد. در حجیت خبر در بین ازخاب ما یه قول به حجیت تعبودی خبر که از کرده نقطه این است که باید یک معیاری باشه و تعبود بر اساس رو معیار باشه مثلا به ساقت رامی که مرحوم استاد بستن یا عدل امامی بودن که مثل ساق مداره مثلا قاعده از کردیم این حجیت تربودی خبر در میان علمای ما اکتا بعد از علامه ادهی پیدا شدن و خود علامه هم ظاهرش هم اینطور طور خبر صحیح و تا حدی هم حسن رو قبول می‌کنه. این اسمش حجیت تربودی است از کردیم در میان قدمای اصحاب ما تا قبل از علامه قدما نه این که مرافق شیخون تا قبل از علامه حتی محقق داری به اصطلاح و بزرگان دیگری که داریم ما این مجه فرقودی رو نمیبینیم تعبیر به خبر صحیح داریم حتی طور وقت هم داریم صحیح آبا کتاب صحیح لیکن مرافق اصطلاح علامه نیست بله چون علامه از مرموم فیلم تاوست استادشی رفته سهل احمد بن فرسن. علی معروف عبال حسن ردیر دین علی حساب صاحب احبال نه برادرش احمد احتمالن این اصطلاح از نیمه های قرن هفتم یعنی شروع شده اما در کلمات علامه کاملا ظهور پیدا کرده و بعد از علامه ما ادهی داریم مثل صاحب مدارک مثل معلم محالم صاحب به حادیث صحاق و حسان عمل میکنه البته ایشون منتقل جمعه و فرمودن بعد از احادیث پیش مشهور صحیح هم من صحیح نمیدونم یا پیش مشهور حسن من حسن نمیدونم ولی زا روایات رو به این حقیق این قباری بردن صحیح مشهور صحیح اندر حسن اندر مشهور حسن اندر رمزی رمزی هم گذاشته صحیح اندر مشهور سهر ساده های قطعی یعنی صحیح اندر مشهور من همینجور صحیح صحیح یعنی صحیح اینوی صادقهای باییه الاخرین و از هر سکرده فی ماه بعد مثل معلوم استاد هم قادل بهوجیت حجیت بودیه خبر دیگه خبره که می از با علامه یا منجایون بردال علامه فرم مبنای دوم هم حجیت خبر بر اساس قلائه و بنایی بر, بر این مبنا خود خبر با جزاهد شد از اون که در خودمهای اصحاب به دجتان میبینیم این ممنون است بله ازده قرائن موحلوی رو گرفتن ازده قرائن دیگه محاقبت با کتا و سنت رو گرفتن ازده قرائن مذهب رو گرفتن مخصب می خود میتوان که از قرائن مذهب از همش مهمتر پیش اونها وجودش در کتول و و معروفه و تلقیه و این دو تا خیلی برای همه ها با شده اما اینطور نبوده که دارد مدار این دوتا باشن تا باشه ترخوادی پس این هم اونی که ما الان درمیان کلمات قدم ها میبینیم این رعی دومه رعی سوم، عدم حکیت خبر به از کلی مراد این است که ما اصولت به دنبال عرب یا وصول و اسمینام به حکم هستیم نه به خبر این مبنی سید مرتزاست و ظاهر از احوات ابن ارلیس هم همینه مرموم ابن زهر هم همینه این هست چرا؟ که اعتماد ما روی حکم و مضمون خبره نه خوبه پس اگر ما این تحصیل رو قبول بکنیم این تحصیل سلاسی که از کردم من در جایی ندیدم خودم چمون جور که در کلمات ازها قدمای از ها تا زمان علامان یا زمان استاذ ایشان ابن فاروز خوجियत تبرغبی نباشه این تا اینجا اصل مطلب سوالو گفتم خب یه این هيك بذارسه این مقدمه بود البته تکمیله سوالی ابو دحوس یا سوال اینجا مطرح میشه خب چرا این حال معیار واحد پیش نرفته مثلا فرض کنید از اخباریو بگیرن حج در کتب مشهور است قبول کن معیار واحد بگیرن تا چه وجهی تعارض زاهد یک مردانش برمیگرده به اختلاف نسخ و اختلاف کتوب و اختلاف هست از کتاب نعبیانه بوده در طور واقفیه خود کتاب نعبیانه به بخش نداشته ما الان ربایده دیدنیم از کتاب نعبیانه از حریق واقفیه به با ما نسید از طرق امامی رو ما نرسید من احتمال میدم بعد اثر اختلاف نسخ و اختلاف کتب و بعد صحبت این که مثلا این خبر با شواهد میسازه یا نمیسازه این منشر شده ظاهرم علتش باز این باشه به هر حال اون چه که ما فعلا می‌بینیم اینه فضل مثلا از همین کتاب فضل معروف علیمی که افران بار بزن و هم شیط صدور و هم شیط توسی دو تاریخ صحیح به کتاب ده. دو تا ایشون یکی این هم فینفارن اما روایت تعلیم جعفر در این کتاب در کتاب این جوا به نحو اون خصوص منبعشه گویا کله اینا او برده اون 2000 رو نرفتن گویا صدوق آورده این دو تا رو بعضی از طرف شیخ طوسی این دو تا نهبه. یعنی انسان احساس میکنه یک معیار واضح رو دنبال نکردن مثلا میگن مثلا بگیم هر چه از ستاره این جرده قبول بکنیم منفرمیشیم بگیم هر چه از ستاره این این نیست این معیار واحد قبول نشده و از سرم احتمالا مثلا تلقیه مشایخ بوده دراغت بوده اختلاف نسخه بوده مطالبی بوده که حالا دست ما در آقل نرسیده اما مسلمن اینها رو مساله بوجیه کار کردند نه رو مساله سه هفت سرمه یا به تردیر محبه به سلیم و اون مسائل حجیت کار کردن ناسته چون اون مسائل حجیت کار کردن انصافا نتائجش مختلف شد خود اهل سنت هم همینطوره چیار نکنیم مثل احل سنت با اینکه که گذاشتن بذاشتن هم یه خبر پیش همه نه ادعا شده که من اینطور نیست هست اخواری که همشون نعبوی کردن اما زیاد نیست انفراده از خود به طرفه زی این یک چیز کرده اونیم و این هست از که روزی هم انبساط انسان ها مسئله خبر در جهان اسلام مسئله ای که استفاده نظر که وجود نداره نمیشه کم هست خبر اما کم خبری است که داستان همه محدثین محدثین سنت رو قبول داشته باشه سریع می‌داره هست اما عدد فراوان نیست که بتواند جواب‌گوی فکر باشه یا جواب‌گوی حرفا باشه یا اخلاق باشه اما هست اما اون فراغی ندارد ظاهرم علت اختلاف اصحاب ما بود پس تا اینجا این دو سفت و شد یک آیا ادعای سهلی موضوع که خبر وارد پیش کاری پا درست یا نه اگر مراد است تعبودیست برای راست حرفایشانه حجیه تعبودی پیش اصحابا نبود دو اگر مراد ایشان حجیت با قرائن نه خبر با عنوانه برد بین اصحاب ما هجه بوده و مبنای سیر مرتضا در عضا موجیه شازه انصافا مبنای شازی اونی که ما الان رایجم در بین اصحاب میبینیم حتی خود کلینی خب در کلینی فقیه هست و روات اوورده بوده خودشم مرضی که خوال بوده ما اون که رایج شیخ محید ها کده شیخ توسی ها که. اونی که رایج بین اصحاب میبینیم تمسک به خبر و به ظاهر لفظ خبر این مسلم دین است بله در قرائن اختلاف دارد در قرائه اختلاف هست اما با قرائن خبر رو قبول کردن به المناسبه مسلک خودمان همینه مسئله مسلک وسطه حجیت خبر با مجموعه قرائن. بله اگر قرائن کافی نبود من دنبال و هستیم به الله اتداهن حجیت خبر با مجموعه قرائه این رو جیانا به نظر تعبوت که شما ثابت نیست. به هر حال باشه یا حق باشه امامی باشه ثابت باشه الاخری. تعبدی ما در نداریم اما با قرائن چرا؟ مبنای خود ما هم همینه و همین مبنای است که قدمای حساب داره. و همین مبنای است که خوندی برای مُخّث. به نظر ما محقق چون لغتی گفته خبر معیّنه نه درایز داری نشون میده که خبر ثابته نه معایده. پس اختلاف ما با مرمون محقق یه مزا مختصر از رو کنیم زهارا محقق این ترسل به کلام سیر محتضا جده و درست نیست این مطلع شواهد قدیقی در کلمات قدم های اصحابا همین مبناست حجیت خبر به عنوان زیر لحظی با اجماع قرآن با تجمیه قرآن این هم عقیلی ماست و از کردیم در تجمیع قرآن با هم باز خودش اقتلاح همه قرآن و قضایی قرآن دینی و قر از کنیم انصافن ما من حساب مجموع به گومی ها در اینجا از نگیه به ادهی از برداری ها مثل شکل مذهبی رو خیلی قوی میتونه ام تو سیر موضوع که در آن مذهبی نه حالا فقدش نه اما انصافن در مذهبی خیلی قویه و باز هم نمیتونیم یک قاعده کلی بگیم و موارد نواد داردانه دارد بشه. بشیم مسئله یه سوال دیگه آیا این که شیخ توسی ادعای اجماع کرده و سید مرتضا مثلا شیخ در ارده به این انحور خود بحث کرده و به خودش جواب داده سوال کرده که مرحوم شیخ انصاری این مدار تو رساله آورده علی و در خود ارده مفصل کرده مراد شیخ توصی از اجماع با اینکه میبینه استاد سید مرتضی دای اجماع و عدم حجیات کرده چی کرده. از که در خلال بحثی گذاشته وجوهی ذکر شده اون چیزی که به ذهن من میرسه هم مثلا سر در مقابل سونیا گفته باشه این نیست واقعا واقعا عقیدش اینه بخص سندوشی وقتا اون که به ذهن من میرسه اینه که مرمون شیخ توسیق از الله هم هم هسته همچنان که معروف هست در فقر در همین کتاب تحضیف حدیث یه نفلی جمعی بین روایات می کنه. که اینگاه جمع خیلی هم مقبول نیست قرفی اسمشه فوقهای متخفه بسن جمعه تبرویی جمعه های تبرویی داره فکر میکنیم شیخ اینجا ها میخواستی یک جمعه تبرویی بکنه بین کلام سید مرتزا و بین اون واقعی که در خارج وجود داشت مثل کار غمی ها که به خبر عمل میکردن این عقیق خودم من میکنم به کچه نسبت داره شیخ میخواستی یک جمعه تبرویی بکنه. میکنه بگه اختلافی نیست ولی اصلاح ما سید موضوع به خبروار برجت نیست مشاهیش قوم گفتن خبروار برجت نیست مثلا این تو خود بغداد ادهی میشه شیخ نحید واقعا همین خبروار برجت نیست میخواست ایشون بگه اختلافی نیست این میشه خواست بکنیم بیدیم لحظه جمع بکنیم مرگوم سید موضوع که میگه خبروار برجت نیست به در احکام شرکی که کار میکنه میشون به همین بهمی کتبی که بین اصحاب ماست کتب روز سعید بوده کتب هستم محبوب بوده کتب نبی اومر بوده و داخل سیلمانزا بحرین ها بحرین گرده به همین بهمی کتب اون اصحاب قومی های ما هم مشایخ قوم و بغداد که خبر واقع دو و جفت میده اونا هم بحرین ها بحرین گرده ایمانات مرمون شیخ سوسی توی عده که امروزاشون در سایل هست این معنای رو که من ارزم میکنم به خود در ذهنتون باشه عبارات شهر توسی عابد توجیه و عابد جمعه یعنی ظاهرن مراد شهر توسی این بوده یعنی به عبار از این آخره همینطور که میدونید شهر توسی رو از به خود طایفه میکنن یعنی باید من از کردیم ما از خاندان بابه وی مثل فرد عرض معتمابی از علمانوری بندن که این فهده شما مم خاندان باوهه 22 نفر رضا چون حالا لیست دقیقه تو ذهن نیست هر نفر از مجموع خاندان حال باوهه نه میکنه خاندان باوهه اگر رو اشتباه نکرده باش هیچ کدوم از اینها نمیسته پیش شیخ مفید درست خوندن معذر پیش توصی شیخ توسی درست خوندن چون شیخ مفید خیلی با صدو و قمیه ها به شدت بد بود با و اون شیخ صدو و رد ردود این یه بشته چیست توسیه اصولا ملایمتره تو مکتر بغداد سر یکنی این نحری بین قوم و بغداد رو جمع بکنه بینید دومکتر رو جمع خود بنده ارز کردم این در درجه ایندارم چند بارم کردم احتمال دادیم در این کتاب خلاف که یه دلیل اونا اجماع فرق و فرقه و احتمال خودم آنه از مشاید توی این نجاید. مرادش از اجماع فرقه رأی بغدادی ها باشه اخبار هم قومی ها باشه چون بغدادی ها زنبال اجماع بودن قومی غم، ها بیشتر دنبال اخبار بودن این احتمالی است احتمال. که به هر حال اون که قدر موسیقی با این که مرگوم شیخ مفید بسیار بزرگ باره لیکن بناشتار از شیخ ترسی به عنوان شیخ و نام برده میشه یعنی به شیخ قدس الله نفسه با این طرق علمیش ترکرده خالصه رو جمع بکنه روی محلل باهی این ذهنیت از در درست با مراجعه تاریخی شیخ مرادش از ادعای اجماع این معناست این معنای که ازگردن اون این که به درسته حتی منکرین خبر در مقام استنباد فوقاهای شیعه چه بغدادی ها و چه قرنی ها چه مصفتین چه منکرین به همین کتاب مالورتی خود و مالورتی خود ما برمیگردن به کتاب حسین سعید و از محبوب و کتاب یونس مردالرحمن و حالا نسخه کتاب یونس مختلف اون بحث دیگر ایست کتاب حسین سعید مختلف اون بحث دیگر ایست به کتاب نوی رو به همین کتاب برمیگردن سعید معتض هم که منکنه بعد به همین سعید منگرده این تو نیست سعید نوتا به سعید بخاری و سعید مسلم و و میوان به همینا برمیگرده خوب درسته نتیجه اجماع اصحاب بر عمل به همین است اجماع اجماع اصحاب بر عمل به این روایاته. پس در حقیقت به عبارت دیگر اخرا مراد ع از اجماع اصحاب بر عمل به اصطلاح ما های علمای دین از قاضی تا حدی خارجیه است یعنی روایات معینی که لباس از کتب معروف و مشهور باشه این مسترد به حساب تکوای اصحاب ماست پس اصحاب ما اجماعا به روایات وقت واسه اجماعش هم به این معناست امثال سیر مرتضی هم به همین کتب برمی‌گردند قمی‌ها هم به همین کتب برمی‌گردند پس این مراد اجماع سید مرتضی شیخ در حقیقت اینه این توجیه ای اینکه به نظر ما سوال آگه این مطلب درسته خیلی خوب بسیار که فرصیم مراد شیخ توسیم این باشه با مراجعه به کلماتیشان آگه این مطلب درسته آگه این ندیجه را جواب خیلی مطلب درستی میز این تقسیم بندی که ما کردیم اینه که درسته سعید مرتضا به همین کتاب برمیگرده ما قبول کردیم جای شکل همه ک لیکن سیر مرتضا بینا رو جور میکنه به جمعی که مفید به رسول و اطمینان به حکمه نه با اونها دلیل لحظی درسته این مطلب درسته و من از آده که اگر روایتی مثلا فرصد در کتاب تا حسین هست سه بخش یه بخشش از خواب قبول کردن یک بخشش را را کردن این مختلف مفیه مرمون و هر سه بخش عمل نمی بودن. اون بخشی که تلقیه به قبوله یعنی کلام سید مرتضا مثل امرو محققه ما به دنبال عمل و قرائمی اگر هم خبری بود خبر معیته این تفکر سیفه امتظا اساس کار ما به دنبال قرائمی ما به دنبال تلقیه قبول بین طرف هستیم پس این با اون حجیه دیگه در بود، انصافاً تحرم میکنه پس این کلام مردوم شیخ طوسی بله اجمالا هر بردی می که معلم هستن اونجا من گفتم حسین سید باشه اجمالا هر دو هستن وقتی بخوایم تحلیل عمیق بکنی و دقت کنیم. انصافا این دو تا مبلغ ها مثلا دو دیدگار مختلفه مجرد یک کتاب واحد معراش نیست که شما ادعای اجماع بر وجه خبر بکنه سوال اخری آیا شیخ توسی که تره بوجیت اجماع خبر و واحد رو به این معنا میکنه و شبه الان گفتید مثلا فرقی بین قدما نیست آیا در نتیجه تره این معنی شیخ توسی با بقیه فعال اختلاف پیدا کرده یا نکرده سؤال شیخ که می‌کنه میکنه بزنی خبر و هزو هزو. آیا در نتیجه با بقیه علما فرق پیدا کرده یا همینطور که ما داری میگید مثلا همه مثل همه دو تا حدیث مثلا فرق جواب این مطلب انصافاً هدف شیخ توسی تره حجیت تعبودی خبر بوده ما اگر به کلمات شیخ نگاه بکنیم شیخ هدفش همون هدفی بوده که استاندارد علمی اون روز بغداد بوده از کردیم استاندارد علمی احل سنت حجیت تعبودی خبره استاندارد علمی اصحاب قدم های ما حجیت و اغلایی خبره با غرینه با شباره حجیت شواردی خبر این دوتا با هم دیگه پرمون لیکن شیخ ظاهرن در هدفش ترمین حجیت تحبودی بوده این درسته من ببین کسی از قدم و نیست هدف شیخ هست این درست اما عملا شیخ این کار نکرده این هدف شیخ هست ولذا انصافه از این جهت کار شیخ یه کار جدیدی است هم نسبت به مکتب قم هم نسبت به مکتب بغداد اینو واس قبول بکنیم یعنی با مراجعه قطعی ما به کتب شیخ این مطلب کاملا واضحه شیخ ظاهرا خواسته مساله حجیه بودیه خبر رو مطرح بکنه و مطرح کرده که این دیگه در زمان شیخ جز مسلمات اهل بوده خب به این جزو مسلمات علم بوده که خبر هجیت تعبدی داره خبر سریعی مثلا فرز کنم این جزو مسلمات بوده شیخ هم قدس و اهل سنت هم به این دید نگاه می‌کردند کردن بشیه و نظام شیخ هم ترخش هم اینه که تره هجیت تعبدیه و نظام تعبدی ما چند باره محض کردیم وجيه تعبدی اولین بار در تفکرات شیعه فلسفه شیخ مظفر شده لکن شیخ کاملا به این طرح ملتزم نیست بعد از دو قرن توسط علامه مظفرینه لکن بعد از علامه حالا خود علامه تا حدی اون سلیو اثر حضر... بعد از علامه اذه از اصحاب ما کاملا به این طرح متعبد شدند کاملا مثل صاحب مدارک مثل آقای خویی ادهه به این طرح حجیه تعبدی کاملا متعدد شده. خب دقیق رو کنی. پس این طرح حجیه تعبدی ورودش در تفکرات ما از قرن تنجمه توسط شیخ لیکن این من میگم قدنهای اصحاب کسی همین خودشیخی لباخ نیست این مراد ننیمون همین شیخ در مجموعه افکارش دنبال پر حجیت تعبوزی باشه تا, تا با تمام لرازمش این نیست از این فیلازاله که نیش موجود این تحجیانه افتاد غیلی از معاصل ایشان و افتاد ایشان سهده مرتضا بعضها مثلا فرسون ابن الویز بعضها فرسون مثلا بینیم که ابن زهره بعضها فرسون خود ممقیقه الویز بعضها بزرگان دیگر مثل پخش راولی که به اصطلاح کتاب آیات الاحکام تاره در بین اینها باز چون بحث خبر قبول نشد رضا این مبنای شیخ خیلی روش پیدا نکرد از کردیم یک ای احتمالش اینه تا زمان شیخ هنوز ای از مصادر اولیه موجود بوده نقطه تاریخی شده زمان اینه از زمان علامه دیگه مصادر تاریخی نبود مصادر شیعی یعنی کتاب مفضل نبود کتاب یونس نبود کتاب تقصیم کنید لذا مقابله علام و که بعد از آدم راه بسته بود خیر از وجوه به صفات راوی راه نگه الان اشاره کنم. احتمالا یکی از عواملی که از خواهر نتونستن بود مبنایی واحد رو برن چون مسادر اولیه موجود بود اختلاف نسخ بود اختلاف مسادر بود نمیتونستن او یک مصدر تر... یک عنوان واحد تسیم گیری بکنن شیخ هم همینطور باشه مشکل هم هم بود ادهه از خطور محلوس دا زمان موجود بوده و لذا خود شیخ هم نتوانست تسیم گیری نهایی بکنه زواهر عبارت شیخ در تر و اصولی شدیه تر است. لیکن تو مقام عمل که نو بیشتر به همون قراره و شوابه م لکن معذاره که کلی بوده قبله این نفتی احساسی اینجا قطعا جمله از حتابایی که شیخ داره متأثر به همین مسئله که حجیت تعبودی یعنی شیخ قدس الله نفسه تر و نفسه ترم و حسولیش تعبودی بود در عمل باز هم به قرآن مراجعه کرد لکن در مقام عمل باز هم شیخ قدس الله نفسه فتحوانی رو مطرح کرد که احتمالاً مراد شهیده هم که ارجاع به زمان شیخ شیخ نظرست هست این باشیخ هم درسته شیخ برای اولین بار روایاتی رو مطرح کرد که تا زمان اینشان مطرح نبود. نبود در کافی مطرح نبود در فقیه مطرح نبود فتواشان مطرح نبود استاد ایشان شیخ مفید مطرح نکرد بود فتواشون شیخ صدوب در کتاب فکریش فتا را داردون دقت می شیخ اینا مطرح کرد با یک عزق وارد اصولی مثلا این بود این یا این مثلا اینجا معارض نداره یا این مثلا با برده شواره دیگه می‌خوره. شیخ را الله نفسه با مطرح کردن اینها این صاحبا این مواردی را از موارد اختلاف یعنی مواردی رو در فقر وارد کرد که قبلش شیخ نبود روایاتی رو که که قبلش شیخ نبود اگر مراد شهید اینه این حرفیشان هم درسته هم فتحاوایی رو که قبلا نبود همینجون مثلا فصل روایاتی که اگر نظر احرام قبل از میخواد بکنه اون درسته احرام قبل از میخواد این اصلا قبلش شیخ مطرح نیست در حضر روز آقا شیخ هم سپر آقا بوده روایات منحسرن از شیخ وکه نه این شیخ حسام الدین گرفته شیخ از کتاب محمد نحمد گرفته از کتاب سفر گرفته کتبش هم معینه، مسادرش هم معینه، هیچ ابهام نداره. عملش از این لحاظ خیلی خوبه که عملش معینه. این نقطه بسیار مثبتی در کارنامهشه. این درس لاکن نه در کتاب کافی آمده، نه در کتاب فقیه آمده، نه پتواش تو من لایه توی مهنه شیخ مفید آمده، نه در کتاب فقیه شیخ مثل شیخ مثل آمده. از کسی قبلش شیخ نقل نشد این فتوا نه روایاتش در قبل از شیخه نه فتواش در فتوای قبلش شیخه پس اینی که ما خیال بکنه شیخ عملا به همون روایاتی عمل کرده که اصحاب ما یا بغدادی یا قومی عمل کردن و این مبنای او حجیت تعبدی خبر بی اثر بوده نه این طور نیست این اثر داشته این نکته شیده. این مبنای شیعه حجیت تعبدی خبر بوده اثر داشته بله اگر به این مبنا میشست خیلی جای میگم باز التزام میذاره اونجا نداده این قبول و لزوم میبینیم مثلا آخویی باز همین کاری میکنه خیلی از جاهایی که مرحوم خودش خبر رو آورده و عملاً نکرده آخویی میگه چون خبر سرت عمل میکنه پس و تقوا میاد مخالف مشهور است این مراد ما حجیت تعبدی اینه یعنی اگر یک مبنایی رو گرفتن دنبال اون مبنا برن نه برناشون اینجوریه که به خبر عمل میکنن تا تسالوم بر ترک خبر باشه نه اعراض مشغول و اگر خبر زهید باشه بهش عمل نمی تا تسالوم بر فتوه باشه تسالوم بر فتوه, فتوه اونم به خبر که تأثیر نمی‌کنه کنه بر فتوه باشه چرا قبول می‌کنه؟ پس این دقیق بکنید مبنای ایشان هلی واضحه حجید تعبدی خبر سقه زیر بناش اینه که اغلاق تعبد دارن شاره هم این تعبد و اغلاق امزا کرده پس ما هم تعبد کنیم و به این مبنای ایشان درسته هم از سران چند واضحه آماری هتاکنس 30 مورد بیشتر کم ته. که مرموم استاد با فتوای مشهور مخالفه این سر مخالفه ایشان همینه کیا خبر ضعیف بوده مثلا این بین اصحاب شاید 60 درصد دردار اصحاب ما مجموع قائل به ولایت فقی در باشن که فقی منصوب است از طرف ما از این قائل نیسته از خدا ما مثل صدو خب چون حدیث ما نهند داره ضعیف و صنده قبول نهند با این حدیث ما مقبول است البته این کتاب تنقیهی شما قدس الله حسر به همه همه در اون چاپ اولش ایشون آیخوی مقبوله رو قبول میکردن به خاطر اینکه اصحاب تلقی برن بعد برگشتن از این مبنا چاپ بعدی تنمیه هم هاشیه داره ایشان که مقبول استاد از این مبنا برگشتن درست ایشان بعدها در خبر عمار ابن حضر رو قبول نکردن ولو مقبوله هم باشه چون اون مبنا برگشتنی به قبول تاثیر ز مثلا ایشون خلافن دل مشهور حالا خیلی هم تصور نیه که مثلا نور درست قبول کردم من نیستن درست قبول کردم. حالا من وادون بحثش نمیشم چند دست رو قبول کرد و هر حال ایشون خلافن مشهور حتی قاضی منصوب رو قبول نداره ایشون قبول نداره که پاقه ها از تفعیمه منصوب هم برای قضاوت، حالا اون اداره جامعه اون اون برای ایش ایش ای این مرحله را که ایچی اون محله برای که چون که با اینکه خودشان در نهشتهشون دو مردانه در تندیل در شاپ اولش قبول کرده بودن قاضی مسوله قبول کرد. اما در شاف های بعد برگشته، فهمدند این دوست ما قبول نمیکنه و این که امل نه، هر مدر فقاهه برمان قاضی قبول نمیکنه. دیگر حالا بگیم هر چی الزمه هم به مال دومی انتخابیه. شیخ را قبول کرد، نه کلی قبول کرد او را در و نه معلوم شد که در حته مرموشه زیاد آزمان بخواهم بگم اینقدر مشاب مثلا به طور کلی رو اون تلیش نحساب بکنیم مثلا از کتاب رحمه سعد بن عبدالله که کلی اصلا نحن نکرده وحش فقر سرون مقدار مختصایی به همفر شف زیاد نرمه و مغزم روازش هم شازه از کتاب نوادر محمد نوازر حکمه محمد احمد حکمه یه نصحه از کتاب عمار پیش ایشان بوده پیش این ص شاید مثلا الان ما در مجموع این کتب عربعه شاید مثلا 80 درصد روایات همار ساباتیه از منفردات شیخ توسیه نه در کافی هست نه در هست و از 80 درصد که ایتون انتراد داشت 90 درصد این کتاب و این نواله در اختیار کلینی هم بوده در اختیار شیخ اینا موارد ترده یعنی اینا است که شیخ تحاله از اوی مبنای حجه خبر مبنای حجه تعبدی خبر رفته به ادهی از روایات ایمان آورده تطاقایی رو گفته تطاقای که قبل از ایشان مطرح نبوده نمیدونم خوب روشن شد پس این مطلب که شیخ هم ما میگیم مثلا همه به قرآن مراسیه میتونن شیخ هم تو مقام عمل به روایاتی عمل بکنه که مشهور وقتدادی یا قومی ها عمل کردن و این مبنا مبنی وجهد خبر که شیخ اوهده تأثیری در کار ایشان نداره نه اینطور نیست درسته شیخ در تمام موارد التزام به مبنا نداده مثل صاحب مدارک یا مبنی استاد این درسته لیکن محضالت موارد فراوان، داریم که شیخ تحت تاثیر معنای حجیت خبر ایده ای از روايات آورده رو که اگر شیخ نبود موثع از اون خبر نرسید. چون در مثلا این روازم دقیق کلی عجیبا در قرن دوم فتره امام فرموده در قرن سوم در کتاب نواظر حکما آمده در قرن 14 نیامده نه, نه کلینی آورده نه شیخ صدوق تو قرن پنجم شیخ طوسی آورده پس این که شیخ مبنای حجیت رو مفرح میکنه و طبق اینتر تأثیر میذاره در حدیث ایشان و در طبق ایشان این درسته اصل این مطلب درسته و انصافل حل از زمان ایشان ریشان های حجیت تعبودی خبر پیه روایات پیه مجال علمی ما وارد میشه اینم درسته این از زمان ایشان مبنای حجیت تحبودی خبر یباش شباش روی کارهای ما وارد میشه این و هم این صاحب توضیح توضیحشه اینشارا تو خیلی که نگاه بکنید زیاده این هست البته این هم خیال نفرمانید حتما شیخ اصلا از این بر میاره میاره که اون رو نمیاره اصلش هم هست ما شب تحجب بکنید مثلا حدیث رب طبعا امکیس تخصایی تخصایی تخصایی مرموم کلیدین در کتاب ایمان و کف ارده سردش ضعیفه مرموم شیخ صدوق در تقییر مستنم ارده در بردی از کتابش هم سنده و ارده کنن مشکل دن شیخ توسی هم اصلا این حدیث نه برده شاید تحجیب کن شیخ توسی در مناسبت هایی تو خلاف حدیث رفع سلاسی که در مساور اهل سنته چون احل سنت هم حدیث رفع دارن سلاسی امنا لا تجاز در ام اون حدیث اهل سنت آورده این حدیث شیعه اصلا شیعه نکرده خلاص خیال هر کسالا که من بگم شیخ عظیم من آورده حتما مثلا چیزی آورده که اونا ندارن عکسش هم نه حدیث منبرغ کلینی در کتاب کافی آورده ایمان و کفر آورده شیخ صدوق در تقریر نیه آورده اما در کتاب ثواب اعمال آورده شیخ طوسی هم اصلا در نمیورد منبرغه شیخ ابن حدیث مندلت اصلا در آثار شهر توسین نیست حالا مثلا اجماع اصحاب از در این حدیث نم خود شهر توسین نداره باید شهر توسین با جالتا از اون این که لذا خوب دفت بکنیم ما توی این البته این بحث اجماع و ادعای اجماع توی خبر و یا آشنایی با مبانی از ها. این جزا مسائل مهم خبر واحده ها این چند روز صحبت کردیم یعنی تو خبر واحد چه نفیه چه اثباته یه دو ستا بحثش خیلی کلیدیه یکیش آیه نقعه چون عده زیادی از علماء و اون کردن و معتقد شدن یکی مسئله است که ما داریم، عدد معتنا بهیه یکی این دعوای اجماع و عمل فوقهای ما این ستا خیلی که دیگه هم پس دعوای این تا اینجا به اینجا رسیدیم که دعوای اجماع در مسئله بانوان دعوای تعبدی قابل نیست دعوای شیخ قابل توجیحه با توجیح بشه دعوای سید مرتضا توجیح بشه سید مرتضا که میگه از عمل نفعیم حجیت تعبدی قابل نیست راست هم هست اگه این باشه راست. که کلام صدر مذبحا توجیح بشه کلام شیخ طوسی با توضیح بشه موضع ما در مقابلی دو تا دعوا موضع انفعالی نیست ما زیر بناهای هر دو بزرگوار رو میدونیم هم این رو میدونیم هم اون رو میدونیم اینطور نیست که ما کلام این چه بزرگوار با تعبد و چشم و و از قول امام این حرفا رو اصلا مجالی نداره عمل اصحاب ما هم کاملا برای ما واضحه و روشن همس که توضیح دادیم و نقطه اساسی تر همینطور که در بخش روایات گفتیم انصافا هم از مجموعه روایتی که ما خوندیم تقریبا همه شو خوندیم از مجموعه روایات ما هم در میاد که خبر خبرواهیت این جمله بوجهده این هم در میاد یعنی اگر کسی بخواد بسید سید منزداروی اصلا خبر خود نداره خود جلح نداره از مجموعه روایات خلاف او در میاد اما از مجموعه مجموع حجيت تعبدي در نمیاد که ام سابقا گفتیم. این سابقا از مجموعه روات حجیت تعبدی در نمیاد اما حجیت خیلی جدی در میاد. از مجموعه روات اصلا ما در بحث طرف سه تا اساسی در شیعه داریم یکی اولی نه یکی مجموعه روایت ما و یکی دعاویج ما و اصولاً تطاوای اصحاب ما عمل اصحاب ما به انصاف قضیه انصاف قضیه با مراجعه به ارتكازات و اغلایی یک و با شواهد قرآنی دو و با شواهد روایات سه و با شواهد قطابای اصاب ما تا زمان علامه چهار اون چیزی که در میاد وجیهت خبر است. نه اینکه عدم وجیهت اصلا حجر نباشه لیکن با مجموعه قراره این انصاف در بیاره. و انصافن هم قرامل مختلفه انصافن نیسته بگیم همه از ما ما یه خری نبوده هم انصافن اون هم مختلفه اما این در میان حجیت تعبودی خبر از مجموع ادله در نمیان عدم حجیت هم که سید و مرتضی آقله. اما به دنبال و حکم اون هم اثبات نمیشه اون مقضاییشون هم انصافن روشن نیست و هر مبنوه مبلغ و حقه که خبر رو معیه اونم بود کرد اونم ثابت نیست. از مجموعه این که تا الان خوندیم ماردتر شما رو مشغول کردیم انصافا و در این عقلی هم که ذکر کردن ارزش وجودی نداره، اصلا نبا ذکر بشه نه هم توی این مسئله داخل بشه نه عقل حملی نه هر نظری اون چی که ما داریم اهمش این ستاست روایات پیش شماشون خیلی زیاده اهلسانت هم روایت دارن اما به زیادی ما نیست چون بر رسول الله ورمید و آیات مبارک و عمدش هم آیه نبره و عمل اصحاب یا دعاوی اجماهی که شده این ما مجموعه رو با هم بریدیم و طبعا سیر و اغلام که اخیران آقای خوبی دیگه خیلی دون استاد دارن و این مجموعه ات سیره اوغلا هم بر تعبد ثابت نیست سیره اوغلا پیش ما با مجموعه قرائن ثابته اوغلا هم اگه خرری باشه و قرائن ما عیدش بشه متن خبر رو ثابت می‌کنه اما تعبد باشه به سفاظ راوی یا تعبد خاصی ثابت نیست انها تعبدی که گفته شده انصافاً ثابت نیست ادله تعبد در محضر اون هم ثابت نیست یک نوع تعبد و با مجموعه شواهد. بله ارده از شواهد محل کلام بوده بین ها که انشاءالله تو بحث آینده متعرض میشین این تا اینجا راجع به این مسئله و انشاءالله تعالی مجموعه شما آزاری شما به دیگران اصولا به نظر ما تره مسئله عذابی اجماع درست نیست ما هم مدعی اجماع رو می‌شناسیم هم زیربنای فکریش رو می‌شناسیم هم واقع عملی بین اصحابش رو می‌شناسیم ما وجود نداره که بخوایم بگیم رو به تعصب به ما